افسانه هایی از کاور دور ژاپن ترجمه اردشیر نیکپور ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سما مهربان داستان اوراشیما روزگاری ماهیگیری به نام اوراشیما با پدر و مادرش در دهگده کوچکی زندگی میکرد کلبه اونها کمی دور از دهکده در پای تخت سنگ بلند قامتی که روی دریا خم شده بود قرار داشت و در نزدیکی اون جنگل سنوبر گسترده‌ای وجود داشت هر وقت هوا خوب و دریا آروم بود وراشی از سهر به دریا میرفت و دریا زود برگشتنش از دریا مستگی به سیدش داشت گاهی میشد که شامگاهان به خشکی باز میگشت و در چنین مواقعی پدر و مادرش به کنار دریا می رفتن و با نگرانی زیاد دریا رو برای دیدن زورق پسرشون با نگاه جستجو میکردند با خودشون میگفتن کاش اون ماهی زیادی گرفته باشه که فردا به بازار ببریم. در یکی از بامدادای زیبای بهاران که ابری در آسمان لاجوردی دیده نمیشد، نسیمی گرم جنگل سنوبر رو نوازش میکرد، برای شیما به دریا رفت. به این امید که هرچه زودتر ماهی فراوانی بگیره و زودتر از روزهای دیگه به ساحل برگرده. بره دهگده ساعتی با دوستاش گپ بزنه، چون مدتی بود که فرصت دیدن دوستانشو پیدا نکرده بود، اما این امید اون برآورده نمی شود. اون چند بار دام در دریا انداخت ولی هر بار که اون رو بالا کشید دید سیدی تو دامش نیفتاده روز از نیمه گذشت و اون سیدی نکرد با خودش گفت یه بار دیگه هم بختم و آزمایش می اگه بازم توی دامم سیدی نیفتاد لنگر می و به ساحل برمیگردم. چون دیگه مطمئن میشم که اون روز بخت روش از من گرفته اما این بار چنین نمود که بخت روی اون لبخند زده چون وقتی خواست دام رو روی قایق بکشه اون رو سنگین احساس کرد با همه نیرو و توانش دام رو بالا کشید و سیدی رو که در اون افتاده بود دید سیمین ماهی بود که اوراشیما تا اون روز مثلش رو نعیده بود نه تنها بسیار دروشتر از سیمین ماهیانی بود که تا کنون کرده بود بلکه آنچنان زیبا بود و می درخشید که چشمای اوراشیما را خیره کرده بود. از ماهی پرتوه سیمفامی می تابید و چون پرتوه خورشید به فرس های اون همه رنگهای رنگ رنگین کمان بر اونها می درخشید. اما از همه اینها دیدنی تر چشمای ماهی بود. با نگاهی چنان سرشار از اندوه و درد به اوراشیما خیرا شده بود تا جایی که اوراشیما دلش نیمد اونو بکشه با خودش گفت حیفه چنین ماهی زیبایی در بازار فروخته بشه به این ترتیب با دقت و احتیاط زیاد اونا از دام بیرون آورد و دوباره در آب انداخت ماهی چون آزرخشی موجها را شکافت و در دریا فرو رفت اما به زودی برگشت و نگاهی سرشار از سپاس و حقشناسی به آراشما انداخت و بعد دوباره در جرفای آب ناپدید شد. آراشیما که در افکار عجیبی غرق شده بود پاروها رو به دست گرفت و به سمت ساحل برگشت. اما نتونست خواهش و التماسی رو که در نگاه ماهی به دام افتاده دیده بود فراموش کنه. اون تصمیم گرفت که درباره سید عجیبش با کسی حرف نزنه چون نه تنها کسی حرفش رو باور نمیکرد بلکه اونو رو مسخره که چنین ماهی عجیبی رو دوباره به دریا انداخته پدر و مادر اوراشیما در کنار دریا منتظر برگشتن اون ایستاده بودند چون پسرشون رو غم زده و افسرده دیدند حمله بر این موضوع کردند که چون سیدی نکرده غم زده است او رو دلداری دادند گفتند قم نخور نخورت فردا بخت با تو یار باشه فردا هوا بسیار خوب بود اوراشیما از سپید دمان در قایق خودش نشست و به میون دریا رفت اون ساحل رو مینگریست و میدید که کم کم تخت سنگ و کلبهشون از دید اون ناپدید میشن چون به میانه خلیج کوچک رسید لنگر انداخت و آماده شد که دامهای خود رو به دریا بندازه اما ناگهان شنید که یکی اونو به نام صدا میکنه اوراشیما او شیما. او شیما سخت به حیرت افتاد دوروبرش رو نگاه کرد چه کسی در بین موجهای دریا میتونست اونو صدا کنه هرچی نگاه کرد جز لاک دریایی بزرگی که به سرعت به سمت زورق شنا شنامی کرد کسی را ندید آیا همین لاک پشت اونو صدا کرده بود؟ لاک بعد از اینکه خود رو به کنار قایق رسوند سرش را از آب بیرون عورد و به صدای انسانی به اون گفت اوراشیما سرور همه دریاها که در کاخ خود در جرفای دریا نشسته و همه دریاها قلم فرمانروایی فرمان روایی اونه منو پیش تو فرستاده. دیروز تو یگانه دختر اون رو از مرگ رهایی بخشیدی. از این رو سرور همه دریاها تو رو به کاخ خود که تا امروز هرگز انسانی وارد اون نشده دعوت میکنه. بیا بر پشت من بنشین و من تو رو به اونجا ببرم. اون چنان متحیر شد که خیلی طول کشید تا حرفای لاک پشت رو بفهمه. اما هنوز دو دل بود و نمیتونست به اون اعتماد بکنه. لاک پشت با دیدن تردید اون گفت نه ترس. لاک من به قدر کافی بزرگه و تو میتونی با خیال راحت روی اون بشینی. از موجای دریا هم نه ترس. اونا راه رو برای ما باز میکنن. تو حتی خیس هم نمیشی. بیا بریم. سرور دریاها و دختر اون در انتظار تو هستن. این فکر که اون نخستین کسی هست که کاخ زیر دریایی سرور همه دریاها رو میبینه و با خودش هم دیدار میکنه واقعا برای اوراشیما بسیار حیجان انگیز و تحریک کننده بود. از این رو تردید و دودلی رو کنار گذاشت و قایقش رو ترک گفت. بر لاک پوشت که بیشتر از تصور او بزرگ بود قرار گرفت. لاک شروع به شنا کرد. آب کنار می رفت و کوچه می داد و برای اون دو گذرگاه باریکی ایجاد می کرد. لاک هم در همون حال که در آب فرو می رفت به اراشیما چنین می گفت. من باید به تو بگم که دختر سرور همه دریاها تنها سالی یک بار حق داره در اطراف کاخ گردش کنه. در اون روز اون به صورت سیمین ماهی در میاد و ما در برابر درهای کاخ شنا می کنیم. من یکی از سفیدای اون هستم. دیروزم همین طور بود اما شه دخت به جایی اینکه مثل همیشه اطراف کاخ بگرده هوس کرد که از اون دور بشه من کوشش زیاد کردم که اونو از این کار منعش کنم اما کوشش های من بیهوده بود اون اندرز منو نشنید قبل از اینکه من بتونم اونو از تصمیمش منصرف کنم شتابم بالا رفت و به زودی از چشم من ناپدید شد چقدرم من ترسیدم چون شه دخت بسیار نازموده است کوچکترین اطلاعی از خطرهایی که در دریا در کمین ما هستند نداره اون با دلخوری و پریشانی زیادی برگشت اما خودش رو خوشبخت میدونست که در دام مرد مهربونی چون تو گرفتار شده بود در این بین اون دو به باغچه‌ای غرق در زیباترین گلهای دریایی رسیدن و ناگهان کاخ سرور همه دریاها در بین گرداب هایی که اون رو در بین گرفته بودند پدیدار گشت و که چه شگفت انگیز بود اون کاخ. در اون رو با زیباترین مرجانهای سرخ ساخته بودند و سقفش رو با روشندترین صدف ها. کاخ رو با درشترین و سفیدترین مورواریت که در دل دریا پنهان شده آراسته بودند. از ساختمان کاخ پرتوه نیلگونی بیرون میزد که اوراشیما نتونست پی به ماهیتش ببرد اوراشیما به پشت سر خود نگاه کرد اما امواج در پشت سر اون دوباره به هم پیوسته بودند ماهیانی که پرتو سیمینی از خود می این سو و اون سو می دویدند و در برابر بر در ورودی کاخ ازدهام عجیبی بود ماهیان بزرگ و کوچک انگبوتان دریایی، ستاره های دریایی، مرکب ماهی ها، خرچنگ دریایی می‌رفتند و می اومدن. اما شگفت این بود که همه اونها در آستانه در ورودی کاخ تغییر قیافه می‌دادند. دادند. که وارد کاخ می به چهره انسان در میومدند و روی لباس‌هاشون تصویر جانوران دریایی رو داشتند. که در کنار در ورودی کاخ از جلد اونها بیرون میومدند. این تصویرها رو یا نقاشی کرده بودند یا سوزندوزی. اما کسایی که از کاخ بیرون میومدند به چهره انسان بودند که در اونجا تغییر قیافه میدادند و به چهره ماهیا یا ستاره های دریایی و ماهی های دیگه در می میومدند. چون اوراشیما و پش به دری کاخ رسیدند همه به احترام اونها کنار رفتند. لاکپشت پشت هم به نامه خود از جل لاک پشت بیرون اومد و ناگهان اوراشیما در برابر خود گیستفیدی دید که به روی اون لبخند می زد و تصمیر سوزندوزی شده لاک پشتی همه جای جامعش رو پوشنده بود لاک پشت؟ نه بهتره بگم سفید. گفت رسیدیم امروز در اینجا جنب وجوش بیشتری از روزهای دیگه دیده میشه. چون این خبر در همه دریا پخش شده که ما مهمان عزیزی از قلمرو رو به انسانها رو به اینجا میاریم. سرور دریاها و دختر اون جشن بزرگی به افتخار شما برپا کردند. بیا، بیا زودتر بریم مهمانداران و مهمانداران بزرگوار خود رو زیاد در انتظار نگذاریم. اون دو از حیات کاخ گذشتند. گروهی که در اونجا گرد اومده بودند در برابر اونها سر تعظیم فرو آوردند. بعد اوراشیما و راهنماش وارد ساختمان اصلی کاخ شدند. این ساختمان در شکوه و زیبایی کمتر از دروازه ورودی کاخ نبود اون رو با سنگ های عجیبی تزین کرده بودند که اوراشیما نتونست شکل اونها رو بشناسه چون پرتو نیلفام تندی از اونها بیرون میزد و اطراف کاخ رو چون روز روشن میکرد دم در ورودی پنج بانوی درباری با کیموناهایی که صورت سیمین ماهی بر اونها نقش شده بود ایستاده بودند اونها مرد جوان و گیس سفید دختر رو در بین گرفتن و از سرسراهای طولانی به تالار بزرگ پذیرایی بردند شهدخت و همراهاش در اونجا منتظر اونها بودند دختر سرور همه دریاها تنها کسی بود که جامعی از ابریشم سفید ساده بدون هیچ نقش و نگاری کرده بود اما با هر حرکتی که میکرد چینهای پیراهنش مثل کفهای سفید دریا میدرخشید و برق میزد. دختر به شادمانی به اوراشیما سلام کرد و خوش آمد گفت با چشمایی که از حیجان پر از عشق شدند از او سپاسگذاری کرد که زندگی دوباره به اون بخشیده بعد اونو گرفت و از تالارهای متعدد گذرند و برد که به سرور همه دریاها معرفی کنه سرور همه دریاها چنان شکوه و جلالی داشت که کسی حق نداشت چهرش رو ببینه از این رو در این جشن هم در پس پرده بسیار کلوفت و آراسته به مرواریدهای بسیار درشت نشسته بود و روی از همه پنهون کرده بود صدایی از پس پرده برخاست و از طرف سرور همه دریاها از اوراشیما سپاس گذاری کرد که زندگی دوباره به دختر دلبند اون بخشیده بعد سرور دریاها اجازه داد که جشن آغاز شود. صدای شیپوری در تالارها ها تنین انداخت. از چهار طرف تالار درهای باز شدن و خدمت کاران برای هر یک از مهمانان میز کوچکی از صدف آوردند. روی هر یک از آنها سینی از بهترین و خوشمزده ترین بود. دختر سرور دریاها ها اوراشیما رو برد و در صدر مجلس نشون همه سرگرم خوردن گیاه دریایی شدند. شه در گفتگو با مهمان گرامی خود باز کرد و طرز زندگی در کاخ دریاها و عادت و خلق و خوی هر کدوم از مدعوین را برای اون تعریف کرد. گفت همونطور که میبینی همه ساکنای دریا در خونه ما با هم دیدار میکنن و با هم در صلح و صفا و دوستانه به گفتگو میپردازند. کسه با ماهی فود ستاره دریایی و انکبوت دریایی با خیار دریایی گل میگن و گل میشنوند حالان که بیرون از اینجا روی دریا دشمن بیامان همند در کاخ ما همه با هم دوست و برابرند قانون ما اینطور حکم میکنه. بعد از اون شهدوخت سخن خود رو با این جمله به پایان رسون امیدوارم که در اینجا پیش ما به تو خوش بگذره بعد از شام نوازندگان در گوشه از تالار جا گرفتن و با سازهای خود که صدفهایی بودند که به بهترین نحوی برایشون تنظیم شده بود به نواختن آهنگ رقص پرداختند به اشاره دختر سرور همه دریاها مهمانان یکی بعد از دیگری بلند شدند و در برابر حاضران مجلس سرفرود آوردن و هر یک به رقصی که خاص خود اون بود پرداخت لاک آرام و آهسته می رخصید مار ماهی نیم دایره می زدن و اندام های باریکشون رو پیچ و تاب می دادن خرجنگ ها یه طرفه می رخصیدن. اما رقص ماهیان کوچیک پرنده از همه جالب تر بود همه برای اونها دست زدند و تشویقشون کردند. اونها ضمن رقص به آهنگ موسیقی به هوا می و آسینای بلند کیمونوی خود رو با حرکتی پرلطف و جالب تکون میدادند. مدتی طول کشید که مهمون ها به نوبه خود رقصیدند. سرانجام همه حاضرای مجلس به صف ایستادند و دست یکدیگر را گرفتند و با هم رقصیدند. دختر سرور دریاها از اوراشیما دعوت کرد که با اون به دیدن کاخ بره. اون دو بدون اینکه رقاصان شادمان متوجهشون بشن، تالار را ترک گفتند. شهدوق اوراشیما را بعد از گذارندن از سرسره‌های طولانی و بازگردن درهای بسیار به اتاقهای مختلف کاخ برد. اتاقها یکی زیباتر و با از دیگری بود. پنجره‌های هر یک به دور نمای خاص باز می شود. در هر یک از اون اتاقها شهدوخت به اوراشیما تعریف می کرد که چه ناهی از دریا رو و قلم کدام یک از جانوران را می‌بیند. اوراشیما همچنان که از اتاقی به اتاق دیگه میرفت ناگهان با خودش گفت که خیلی وقتی که اون در جرفایی دریاست، حالا ممکنه نزدیک غروب آفتاب باشه شاید هم صبح فردا حتما پدر مادرم سخت نگرانند که هنوز به خونه برنگشتم با این فکر غم دوری از دهکده زادگاهش دلش رو فشرد و به درد اوود با خودش گفت که حالا دیگه بهتره برگردم دختر سرور دریاها حس کرد که هوا اوراشیما در جای دیگره. سبب افسردگی و غمگینیش رو پرسید. چون اوراشیما به اون گفت که باید به خونه برگرده، بسیار غمگین شد و با چشمانی پر از اشک به اون گفت: "هیف، من امیدوار بودم که پیش ما اونقدر به تو خوش میگذره که برای همیشه پیش ما میمونی. در اینجا همه مهربونن. تو رو بی دیدی تکریم و احترام نگاه می‌کنن." درست فکرکن شاید حالا دیگه از زمین خوشت نیاد. اوروشیما از این حرف ها به حیرت افتاد و بسیار متاسف شد که اسباب با و غم و اندوه شه شده اما آرزو و علاقه اون برای دیدن پدر و مادرش، آفتاب دهکده زادگاهش و دوستاش بیشتر از هر چیز دیگه ای بود. از این رو با ادب بسیار از دعوت شه دخت سپاسگزاری کرد و خواست که از اون دلگیر نشه چون انسانه و احساس میکنه که به دنیای انسانها تعلق داره. شاه گفت اگه تو اینقدر علاقمندی که به خانه خودت برگردی من تو رو اینجا نگه نمیدارم. اما یه دقیقه صبر کن، میخوام هدیه‌ای به عنوان یادگار به تو بدم. دختر سرور همه دریاها دست اوراشی ما را گرفت و اونو به ژرف ترین جای کاخ به تالاری که گنجهای پدرش در اونجا گذاشته شده بود برد. در اونجا تا چشم کار میکرد مروارید و گوهره‌های گرانبها روی هم انباشته شده بود اما شهدخت از کنار همه اون گوهرهای گرانبها گذشت و از گوشه جعبه چوبی برداشت و اون رو به طرف اوراشیما گرفت و گفت تو شاید بتونی روی زمین به اندازه همه اینها گنج پیدا کنی من هم میتونم هر قدر مروارید و در و مرجان که بتونی با خودت ببری به تو بدم اما میخوام چیزی به تو بدم که از همه گنچ ها گران چون من دلم میخواد که تو اون بالا روی زمین هرچی دلت میخواد داشته باشی این جعبه رو بگیر در این جعبه گوهر دریایی پیمانندیه گران بهاتر از همه گنچ های جهان چون میتونه هرچی بخوای برای تو آماده کنه در زیر این جعبه دریچه کوچیکیه که کافیه تو هرچی رو که دلت میخواد زیر لب آهسته به اون بگی و، بعد سه بار دست رو به هم بزنی تا هرچی رو که آرزو کنی در برابر پیدا کنی اما یه چیز رو هرگز فراموش نکن و اون اینه اگه دلت میخواد همیشه خوشبخت باشید هیچ وقت هیچ وقت نباید در این جعبه رو باز کنی. اون شیما از شهدوخ تشکر کرد و اون رو ترک گفت لاک رو در تالار رقص پیدا کرد همه مهمان ها تا دمه در برابر اون به صفح ایستادند و، خدافزی کردن نراستانه در, در گیس سفید دوباره به جلد لاک پشت رفت و اروشیما که جعبه چوبی رو به تست داشت بر پشت لاکپشت نشست موچ های دریا کنار رفتند و کوچه دادند و گذشتند و روشنایی روز آروم آروم به سوی اون دو پدیدار شد. بعد از اون که در ساحل دریا بروی آب اومدن لاک پشت به اروشیما خدافزی کرد و به اون گفت خدا حافظ اوراشیما گاهی به یاد دختر سرور همه دریاها باش و با اون وقت به زیر آب رفت و ناپدید شد. چون اوراشیما دور بر خودش نگاه کرد از تعجب سر جاش خشکش زد. همه چیز و همه جا به نظرش آشنا بود و هم قریب. خلیجه کنار دهکده زادگاهش رو تخت سنگ قایم کنار دریا رو شناخت. اما جایی که کلبی به در مادرش قرار داشت حالا جزریگ و ماسه چیزی دیده نمیشد. جنگل سنوبرم بزرگتر و انبوهتر شده بود روشیما که از این وضع هیچ سردر نمی آورد به طرف دهکده رفت راهی رو که به اونجا می رفت علف فشونده بود می گفتی انگار از مدت ها پیش کسی از اون راه نرفته دهکده هم کاملا تغییر کرده دهکده دیگری شده بود اونها بزرگتر و زیباتر بودن و بر شمارشون اضافه شده بود. اوراشیما در اونجا به چهره آشنایی برنخورد. همه کسانی رو میدید که براش ناشناس بودند. یکی از اونها در برابرش ایستاد، ازش پرسید: "جوون، از کجا میای؟ دنبال کی میگردی؟" اوراشیما نامش رو گفت. مرد ناشناس گفت: "اوراشیما، نام عجیبیه اما تا جایی که من اطلاع دارم در دهکده ما کسی به نام نبود کم کم ادهه بیشتری از ساکنان دهکده دور جوان بدبخت جمع شدن و با چشمان شکفت زده نگاهش کردند و با هم پچ پچ کردن که این مرد بیکانه آدم عجیبیه با اینکه کسی اینجا اونو نمیشناسه میگه که اهل ده دهماه سرانجام تصمیم گرفتن که پیش راهب سومهی که در اون سوی دهکده بود برن و حل مسئله رو از اون بخواد راهب از دیدن جمعیتی انبوه که به سومه اومد بسیار متعجب شد. بعد از اون که داستان عجیب مرد جوان رو به دقت شنید گفت اوراشیما اوراشیما من چنین کسی رو نمی اما این نام به نظرم آشناست. سب کنید من یکم فکر کنم. راهب بعد از تفکر بسیار گفت یادم اومد. من در دفتر سبت اخبار و وقای روزانه که از راهب پیشین سومعه به من رسیده این رام رو دیدم اوراشیما ماهیگیری بوده که بامدادی که حواسا و دریا آرام برای سید ماهی به دریا رفته بود و دیگه برنگشته بود تنها قایق اونو که در بین خلیج لنگر انداخته بود پیدا کرده بودند. اما ای مرد جوان، تو نمیتونی همون اراشیما باشی چون واقعی که گفتم سیصد سال پیش اتفاق افتاده مروشیما دریافت که زمان در قلمروی روی فرمان سرور دریاها بسیار کنتر از روی خاک میگذره اون سرگذشت خود رو برای کسانی که با اون به نزد کشیش اومده بودن تعریف کرد و به اونها گفت که چطور دختر سرور همه دریاها در دام اون افتادن و آزادش کرد چگونه به قره دریا رفت و چطور دختر سرور همه دریاها ها موقع خدافزی جعبه اسرارآمیزی به اون هدیه کرد؟ اونو شیما همونطور که این حرف رو میزد با خود فکر کرد که بد نیست همسایه های تازش رو که حتما فرزندان دوستان قدیمیش هستند به غذایی مهمون کنه. جعبه رو برگردوند و برگردون دو دهانش رو به دریچه پایین اون گذاشت و اینطور زمزمه کرد. دلم میخواد غذای خوشمزهی برای راهب مهدرم و دوستان تازه آماده بشه سپس سه بار رو به هم زد همون دم در برابر هر یک از اونها میز کوچکی گذاشته شد و به روی هر میزی سینه پر از غذاهای خوشمزه قرار گرفت کسایی که اونجا بودن از حیرت سرجاشون خشکشون زد از او تشکر کردند و به اصرار از اون درخواستند که باز هم از دیدنی های قعر دریا با اونها حرف بزنه راهب کاغذ و قلم و دوات آورد و در همون این داستان عجیب رو در دفتر وقای روزانه سومه یادداشت کرد اوروشیما به کنار دریا اونجا که قبلنا پدر و مادرش خونه داشتن رفت و از جعبه کوچیک خواست که کلبه درست مثل کلبهی که پدر و مادرش 300 سال پیش داشتن برای اون پدید آورد اون در اون کلبه مثل 300 سال پیش زندگی کرد دیگه به ماهی ماهیگیری نمیرفت چون هم از به دام انداختن دریایی خود نفرت داشت و هم احتیاج به صید ماهی نداشت. جعبه سهرامیز همه ها و آرزوهای اون رو برمی‌آورد. اوراشیما فرصت رفتن به دریا رو هم پیدا نمیکرد چون مردم از دور و نزدیک به دیدنش میومدند. میخواستند که از زبان خود اون سرگذشتش رو بشنوند. مراشیما همه رو با روی گشاده پذیرایی میکرد و فقیرا و تنگ رو هم همیشه با دستای پر و گاه با جامعه های نوع به خونه هاشون برمیگردند داستان ماهیگیری که جرفای دریا به دیدن سرور همه دریاها رفته بود و با دست و دلوازی بسیار به تنگ و بیچیزا کمک میکرد به کوش ناظر مالی ناحیه هم رسید اون که داستان رو بسیار عجیب و باور نکردنی حس کرد با خود گفت این ماهیگیر بیگمان جادوگری است بجت جنس و رنگ باز دو معمور خود رو دستور داد که به دهکده ماهیگیرا ها برم و تحقیق کاملی بکنن و معلوم بکنن که اون ماهیگیر مردی شیاد و حقد و نافرمانه یا ساهر و جادوگر معمور در تخت روان نشستند و بعد از سه روز مسافرت به کلبه اوراشیما در کنار دریا رسیدن اوراشیما با احترام و عدب زیاد به اون دو سلام و خوش آمد گفت و بعد تعریف کرد که در کاخ زیر آبها چه دیده. مأمورها با ناباوری به حرفهای اون گوش کردند. سرشونو تکون دادند و بالاخره یکی از اون دو رو به اوراشیما کرد و گفت: "آیا این جعبه پول هم میتونه بسازه؟" اوراشیما پاسخ داد که شهدوخ گفته گوهری در که گرانترین چیز جهانه چون میتونه هر چیزی فراهم کنه پس باید پول هم بتونه بسازه برا شیما در برابر جعبه مقداری پول نقره آرزو کرد و سه بار دست هاشو به هم زد ناگهان تلی از پول نقره در برابر مهمور پدید اومد بعد معمور سالمند گفت در کشور ما تنها امیر حق که زدن داره تو خلاف قانون عمل کردی من به این دلیل جعبه تو رو مصادره میکنم کنم همکنون خواهیم دید که آیا گوهر دریایی در این جعبه است یا تو سحر و جادو به کار بردی که اون هم ممنوعه اوراشیما نگران و هراسون شد به التماس از مامورا خواست که در جعبه رو باز نکنن چون دختر سرور همه دریاها این کار رو ممنوع کرده بود دو مامور در پاسخ اون ما به دستور ناظر مالی مأموریت داریم که هر چیزی رو به دقت بررسی کنیم. اون چی که برای ما ارزش و اهمیت داره دستور ناظر مالی ناحیه است نه حرف بی جای ماهی و دختر ناشناسی. دو مامور با تمام نیروی خود کوشیدند در جعبه چوبی رو باز کنند. چون بالاخره در اون باز شد، در درون اون جعبه دیگری پیدا کردند که با مرواریدهای گرانبها تزیین شده بود. مهمورا اون رو بیرون آوردند و هر طرف اون رو به دقیق وارسی کردند. اورشیما در برابر اون دو مامور خودش رو به خاک انداخت و التماس کرد. بازش نکنید. بازش نکنید. دو مامور نیازی به باز کردن اون پیدا نکردند، چون در اون خود به خود بالا پرید و نخست نوری آبی رنگ بعد بخاری سفید از جعبه بیرون پرید. در همین دم سکه های نقره هم دود شدن و به آسمون رفتن چون بخار به صورت اوراشیما خورد ناگهان چهرش دگرگون شد هزاران چین و چروک صورتش و پوشون دو موهای سرش سفید شد و پوست دستهاش پرچین و چروک گشت اون به یک چشم هم زدن پیر شد و افتاد و مرد ماموران هراسان به سوی پریدند و جعبر و پایین انداختند از درون جعبه ریگ و ماسه بیرون ریخت چندان ریگ و ماسه بیرون ریخت که جعبه سهرامیز و کالبد و بیجانه اوراشیما و دهکده، سخری قائم و جنگل سنوبر و معموران در زیر اون مدفون و ناپدید گشتند. عزیزان شنونده، امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید.